حکایت فقیهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثری نمیکند به حکم آنکه نمیبینم مریشان را فعلی موافق گفتار ترک دنیا به مردم آموزند خیشتن سی مقلد اندوزند عالمی را که گفت باشد و بس هرچه گوید نگیردن در کس. آلمان کس بود که بد نکند. نبگوید به خلق و خود نکند. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. عالم که کامرانی و تن پروری کند، او تن گم است کرا رهبری کند. پدر گفت ای پسر، به مجرد خیال باطل نشاید روگ از تربیت ناسحان بگردانیدن و علما را به ظلالت منسوب کردن و در طلب عالم مأسوم از فواید علم محروم ماندند همچون نابینایی که شبی در وحل افتاده بود و میگفت آخر یکی از مسلمانان چراغی فراراه من دارید زنی فارجه بشنید و گفت، تو که چراغ نبینی، به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس وز، چو کلبه وزاز است، آنجا تا نقدی ندهی، به زاعتی نستانی، و اینجا تا ارادتی نیاری، سعادتی نبری، گفت عالم به گوش جان بشنو ور نماند به گفتنش کردار باطل استان که مدعی گوگد خفته را خفته کهی کند بیدار مرد باید که گیردن در گوش بر نوشته است پند بر دیوار صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه بشکست عهد صحبت اهل طریق را گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را، گفتان گریم خیش به در می برد زموج، وین جهد میکند که بگیرد قریق را.